بسم الله الرحمن الرحیم مبحث شکوه امر خدا مسجد دانشگاه تهران میلاد حضرت علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابل قاسم المصطفى محمد و آله تجبین الطاهرین المعصومین سیوم الخجه بقیت الله العظم روحی و عرباخ الغالمین له الفدا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب بشرحلی صدری و اصرلی امری و حلال اقدتم من لسانی یفقه و قبری. حتما شما سربران معظم امتیازات ویژه و تفاوت و برجفتگی خاص اعتقاف رو نسبت به دیگر اعمال عبادی میدانید. از باب تذکر و مقدمه کلام عرض می که اعتقاف با اینکه که یک عمر مستحبه و شما می توانید به اعتقاف نیایید می اساسا معتکف نشوید واجب نیست معتکف شدن اما اتکاف در بستر یک امر مستحب به الهی جستجو کردن و رسیدن به یک امر واجب اعتکاف اجرای یک امر واجب نیست ولی تمنا و تقاضای یک امر واجب است بعد از اینکه دو روز در مسجد ماندید و اقامت فرمودید روز سوم اقامت شما در مسجد واجب شود. از این جهت اعتكاف چیزی شبیه اهرام بستن است و معتکف شبیه محرم است کسی که اقدام نکرد برای مسافرت و ازم دیار خانه خدا نکرد به او بسیاری از محرمات حرام نیستن محرماتی که بر محرم حرام می شود میخوایم به زبون ساده صحبت بکنیم اعتقاف یه جور تو دردسر انداختن خود انسان هست توسط خود انسان این عمر رفتن این حج رفتن حالا حج اونجایی که واجب میشه بازم نه واجبه تو از اول واجب بوده که بری ولی عمر لاعقل اینجور نیست شما همچی که میخوای وارد خانه خدا بشین محرم میشی، محرم که شدی، یک سلسله واجباتی رو به خود تحمیل کردی. کلمه تحمیل رو هم من بیمهابا محابا استفاده میکنم تا تلخیه واجب بودن امر خدا به سهولت چشیده بشه به دلهای نورانی شما هم کاری ندارن شما وقتی که دو روز اول رو از باب استحباب در مسجد باقی موندید در مراسم اعتکاف، روز سوم امر الهی رو شامل حال خودتون میکنید شما میتوانستید با مستحبات به خدا تقرب بجوید. اما چرا رفتید و جستجو کردید امر واجبی رو پیدا کنید و اجرا کنید در احرام بستن برای حضور در خانه خداوند متعال هم قصه همین طوره. وقتی کسی محرم شد یک سلسله واجبات جدیدی رو انگار رفته به زور از خدا گرفته خدا به من واجب کن خب حالا رعایتش میکنم چرا چون واجبات خیلی قیمتشون و قربشون بالاتره خیلی قدر و منزلتشون بالاست واجبات و عوامر قطعی الهی امر باشه نه ازن باشه مندوبات رو ارض نمیکنم مستحبات رو ارض نمیکنم واجبات چیزهایی هستن که انسان رو نورانی‌تر میکنن. نور واجبات از مستحبات بالاتره حالا شما بیاید روح حاکمه بر واجبات و ترجیح واجبات بر مستحبات رو درک بکنید و در زندگی خودتون درج بکنید اگر این اعتکاف، همیرمایه اصلی زیباییش درک بشه و به جامعه سرایت پیدا بکنه جامعه چه تحولی درش پیدا خواهد شد؟ چرا شما فقط کار مستحب انجام نمیدید؟ چرا دنبال این هستید که امری به شما واجب بشه تا انجام بدید؟ اگر روز سوم اعتکاف مستحب بود شما همتون قطعا باز در مسجد باقی می مندید. چرا خدا ترجیح داد روز سوم رو برای ای که به پای خود آمده اید واجب کند وقوف در مسجد را چرا چرا وقتی ما به زیارت خانه خدا میریم یک دفعه یک سلسله از اوامر واجب الهی به سر و دوش ما به باریدن می گیرن. اگر مشرف شدن به خانه خدا این سلسله اوامر رو نداشت. به همین موضوعات ما مأمور میشدیم شدیم به صورت مستحبی. مستحب بود که به آینه نگاه نکنیم. یقینا هممون رایت می کردیم. اما چرا خدا واجب کرد؟ ترسید ما اجرا نکنیم چرا واجب کرد؟ چون ترجیح داره واجب بر مستحب عملی که شما برای تقرب به خدا انجام میدید اگر واجب باشه قیمتش بالاتر از اون لحظه است که بخواهد مستحب باشد چرا این گونه است برای اینکه اگر مستحب بود شما باز هم تمایلات شخصیتون حتی تمایلات نیک تمایلات خوب وجود داره انانیت و منیتتون هنوز حضور داره ولی وقتی واجب شد دیگه منم نمیتونی بزنی بگی من این کار را انجام دادم می توانستم انجام ندادم اما دوست داشتم خدایا این بندگی را برای شما به انجام برسانم خیلی ببخشیدا تو بیجا کردی این کارو نکردی واجب بود انانیت آدم فرو می‌ریزه گویا اینجا معنای حقیقی اون کلمه زیبا نشون داده میشه که انسان به بندگی کشیده می شود بند بند یه وقت دست دراز میکنی به سوی خدا میخوای دست بدی وقت دستت رو به بند میکشند و میکشانند کدومش قشنگ تره سوال عجیبی از مردم این سوال چون مردم میگن خب معلومه خودت با میل دست بدی خیلی بهتره اما عارفان محرم و معتکف می اگر به بند کشیده بشویم و برویم زیباتر است اگر امر خدا باشد و من به آن مجبور باشم و به آن اقدام کنم نورانی تر است چرا که آنجا من و حضور ندارد بیرنگ تر شده است این منیت این انانیت که بخواهد بگوید من تمایل پیدا کردم به سوی خدا و قدم بردارم همین این من نفس حضورش سیاه میکنه روح انسان رو این من نفس وجودش نفس تاثیرگذاریش در هر حرکتی اون حرکت رو آلوده میکنه حالا من خوب و من بد که نداریم ما اینجا سر من بد صحبت نمیکنیم من دوست دارم یکی رو بکشم که اینجا بحث نمیکنیم سرش اون که یه جایی میگه من دوست دارم تعدی کنم من دوست دارم تجاوز کنم من دوست دارم نمی ظلم بکنم اون... اون چرا اینو میگه از بس یه جاهایی این من رو پرورش داده وقتی پرورش داد دیگه دوره تعدی و تجاوزش هم بگیره. من دوست دارم معصیت کنم حالا در پسش بر بیا خواهش میکنم یه جایی به این من میدون دادی حالا دیگه ایتون رسی جلاشو بگیری کجا من تو سر این من بزنم تا بگی من تو سر این من بزنم من که هنوز حضور داره ازا خدا میاد به کمکت میگه این دفعه من میزنم بر تو واجب است نماز بخوانی و اونجا خدا زدده خواهش میکنم به اون قسمت واجب نماز انایت کنی به واجب بودن نماز در تعریف نماز انایت کنی نماز کار دل خواهی ما در راز و نیاز کردن با خدا نیست نمیگن به این نماز سر نماز بیستی بگی خدایا چون دوست دارم با تو مناجات کنم نماز میخونم الله اکبر نماز باطله نماز تو نخوندی هنوز باید بگی من اون دو از نماز صبحی که تو واجب کردی دارم میخونم و این حرفیست خلاف رویه مردمان خلاف رویه فرهنگ آمه بشری که در این فرهنگ آمه که دل بخواهی قیمت دارد دین هم به پستی کشیده شده است. میگه آج یه کاری کن صحبتی کن من دوست داشته باشم هجاب داشته باشم میخوام صد سال سیاه دوست نداشته باشی اون هجاب دیگه قیمت نداره بیا هجاب به امر خدا داشته باش. این هنوز تشخیص این روند بهش نرسیده به این بلوغ نرسیده که آقا طبق دوست داشتن و میل شخصی عمل کردن خود این بی‌شخصیتی است بندگان خدا در به در فرار میکنند از اینکه چیزی از من انانگیت در وجودشون و در رفتارشون و در افکارشون و در امیالشون وجود بخواد پیدا بکنه اثر بخواد داشته باشه بمیره الهین من این بطه من که من بخوام به واسطه امر بطه من خدا را پرستش کنم اون خدا میشه دوم بطه میشه اول من دوست داشتم الان قرآن بخونم با اول اجازه داد خدا را بپرستی خدا امر تو کو، به من امر کن حتی دوزخ خود را در پی عوامر و نواهی خود بر سر من بکوب تا من ببینم که چار ای نداشتم جز اطیان امر تو دوزخ خود را علم کن با دوزخ تو نه اینکه من انگیزه پیدا بکنم بر اساس خودخواهی بیام عبادت بکنم با دوزخ تو من جدیت امر تو را ببینم بی خود بشوم و بیایم و امر تو را اجرا کنم اعتکاف در به در گشتن و جستن یک امر خداست دو روز در خونه خداوند متعال شما میشینید برای اینکه خدا یه روز بهتون امر کنه خواهش میکنم از اعتقاف که رفتید فرهنگ اعتقاف رو با خودتون ببرید فرهنگ اعتقاف این است که آدم بگه که این قیمت نداره که من میل داشته باشم یه کار خوبی رو انجام بدم بعد برم انجام بدم این قیمتی تر است که اساساً من و میل من وجود نداشته باشد بلکه تنها امر خدا باشد و امر خدا که مرا به خوبی وادار می کند. این معنای بندگی بعضی ها از سر لطف چون آدمهای های خدا رو می پسندن و به خواستگاری خدا می دن و میخوان با خدا نرد عشق بازی کنن خدا رو کوچولو می کنن در حد محبوب زیر دست در حد وسیله نقلیهی که خوشکل دوستش دارن میتونن باش به مقصد برسن مثل یه ماشین میخوان خدا رو به زیر پای خود بکشن انقدر خود پرستن خدا را با ازن خود فقط پرستش میکنن نه خدا را به امر اون پرستش بکنن شما ببینید این نگاه چقدر ریشه معصیت رو میسوزونه ریشه معصیت رو میسوزونه هیچی ریشه های نهال سر به فلک کشیده پاکی و نفس تذکیه شده رو در وجود انسان ریشه دار میکنه و آب میده اصلاح نفس رو نهالش رو در وجود انسان عمیق میکنه نبودن من آقا ببخشید مگه نمیگن آدم بهتر دینداری رو به میل خودش انجام بده این همه فعالیت های تبلیغی صورت نمیگیره برای اینکه ما یه کاری کنیم مردم به میل خودشون دینداری کنن مثلا اینا خب اینکه به میل خودشون باشه که خیلی بهتره به میل خودش بلندشه مثلا نماز بخونه و اینا این به میل خودش که خیلی خوبه که, که خیلی بهتره که من دارم خلاف این حرف میزنم. مردم ببینید ملت. او من دارم خلاف این حرف میزنم. این بهتر نیست. به میل خودش نمیگیم کسی به ما زور بگه. ولی خدا چرا این کار کرده؟ آجا اتفاقا من میخواستم یه چیزی به شما بگم. بفرمایید. تو همین زمینه حالا بحث پیش کشیده شد ها میگیم و الا این حرفا زیاد خوب نیست دادنش ولی یه کمی اینجوری شده که خدای نماز واجب یومیه رو که واجب کرده خودشو ثواب کرده ببخشید البته ما به خدا احترام میگذاریم ولی بالاخره سوال دیگه به ذهن میاد چیکارش کنه آدم چون مثلا خیلی‌ها سوال میکنم میگن که آیا خدا احتیاج داره من یکی از سوال‌هایی که خیلی رایجه میشنوم اینه که خدا چه نیاز داره به نماز ما ببین خدا واجب کرده بوی این استشمام میشه از این وجوب که انگار به ما نیاز داره به نماز ما نیاز داره ببین چه سوالای مردم میکنن آخه آ خودت چرا این کارو کردی مردم کم کم دارن تصور میکنن تو نیازمندی اگه به میل خودش میخواد بیاد تو ناز کن اصلا چرا واجب میکنین واجب نکن این خلاف تصور عمومیست درباره باره نحوه دینداری کردن. خدا دیدید تو قرآن این سه روز الله قرآن زیاد می خانید. تو قرآن نگاه بکنید به برخورد خدا با بندگان خود. اصلا زره ای از الوهیت خود پایین نمیاد اصلا ذره ای از مقام بلند روبوبی خود پایین نمیاد یک امر امرست و نه هم اونجایی که آتش دوزخ را علم می کند می خواهد جبر خود را برای ضروری بودن اجرای امر به تو اعلام بکند و این تو را پاک خواهد کرد بگوی من مجبور بودم بیام این دفعی شما نورانی میکنه. و هم اون جایی که بهشت و رزوان خودش رو به تو میده. اونجا هم همینه اونجا هم داره مقام روبوبی خودش رو اعمال میکنه بر تو. حسین من تو در گودی قتلگاه برای من جان میدی. یه وقت کسی تصور نکنه این یک عشق بازی با معشوق مساویست. من به تو عجر خواهم داد. بعد ما موسیم میخواد عرضی دارد. خدا نه من عجر میخوام این همینجوری به خاطر تو بود. مثلا نمیخوام بوی استقنا از این کلام میاد به حسینم اجر خواهد داد لذا به شهدا میفرماید تجارت میکنند من از آنان چیزی کم نخواهم گذاشت من خدام من یک معشوق گدا نیستم من خدای معشوقم و خدای معشوق با معشوق عادی فرقش این است که خدا اگر معشوق شد تو دوست داری امر او را اجرا کنیم. تو دوست داری از او مزد بگیری. البته این فرق داره با جایی که شما مزد و دوست دارید. امیرالمؤمنین مؤمنی ما مزد و دوست نداریم. ولی دوست داریم از خدا مزد بگیریم. این کوچکی ما را نسبت به معبود میرساند. این رابطه عبد و مولا در اوج عاشقی هم به هم نمیریزد. دنبال مال امر باشید بگردید امر پیدا کنید و اجرا کنید آقا این کار با مستحبات درست نمیشه تقرب با مستحبات درست نمیشه تقرب با مستحبات کمتر است از تقرب با واجبات یه وقت واجبات رو شما حد عقلی در نظر نگیرید واجبات حد اکثری هستن مستحبات مکملن وقت اگر شما خواستیم مستحبات رو باهاش رشد کنی و بالا بری باید چیکار کنی؟ باید بگی خدایا من این کار مستحب و انجام میدم نه به عشق اینکه دوست داشتم انجام بدم و می میتوانستم انجام ندم به عشق اینکه که گوشه چشمی فرموده ای اشارتی فرموده ای ازنی داده ای اجازتی فرموده ای مستحبات رو من به این دلیل انجام میدم که توش یه ذره امر تو هست نه مستحبات رو به این دلیل انجام میدم که واجب نبود چون خودم کردم، کف کردم و همیشه مستحبات خود پرستانه مستحبات رو اگه به این عشق انجام بدی که چون خدا یک ذره اذن داده است میشود مستحبات خدا پرستانه اتکاف یعنی دوستجور کردن برای رسیدن به یک امر خ... الهی مانند احرام احرام نبند. چرا میخوای به خانه خدا بریم؟ نرو او بخواد از تو پذیرایی بکنه، فراوان به تو امر خواهد کرد. تو رو خدا جوون آرزو کنید. خدا توفیق اعتکاف در بیت الله الحرام بهتون بده. محرم شدی؟ رفتی تو مسجد معتکفم بشی. حالا درست آدم از احرام در میاد. متکف بشه بشی بگی خدایا من سختم هم اونقدر بهم هم امر کردی اعتقاف تو مسجد تو دارم وقت دوباره ب... واجب روی واجب چقدر شیرینه لذتش رو دونید کی درک میکنه شما وقتی که روز سوم وم از مسجد برید بیرون دلتون میگیره دلتون میگیره ا... انگار خدا داره بیرونت میکنه شاد باش خب اعتقاف برو بگیه الان تو گریه میکنی میگی من انگار در آقوش رحمت خدا بودم وقتی در سایه امر خدا داشتم تنفس میکردم امر برداشته شد روز آخر ماه غروب روز آخر تا میگن آقا امر خدا برای رمضان پایان یافت دلها گرفته میشه حالا خدا میخواد این بنده های خودش رو شاد کنه فردا بیا ایده فطر بیا شاد بشو من به ایدی میدم دیگه حالا چه چی کار بکنه خدا چه تمهیداتی که این دل گرفته یه بنده مؤمنش باز روشه آقا پس فردا میتونی روزه بگیره بگیر میگه خب آقا میتونم بگم ولی امر تو که نیست فدای امرت میتونم روزه بگیرم امریک که نیست من روزه گرفتم من... من حضور داره احساس احساس استیحاش میکنه از حضور غیر حتی اگر حتی اگر این غیر خودش باشد میگه دوست دارم فقط تو باشی نه دوست دارم من و تو باشیم. دوست دارم فقط تو باشی حتی خودم هم نباشم دوستان فقط تو باشی حتی خودم هم نباشم زیبایی امر خیلی خیلی مهمه گفت زیر شمشیر قمش رقص کنان باید رفت این قم رو بردارید یه بیت دیگه ای بسازید که این رقص کنان باید رفت زیر شمشیر امر و نهیش رقص کنان باید رفت این رقص کنان ها نمیتوکم میگم اون بیت غلطه ها میخوام میگم شبیه اون بیت جوری چه احساس قشنگی نسبت به غم داره این احساس زیبا رو شما نسبت به امر داشته باشید موقع نماز واجب خوندن خوشحال تر باشید از موقعی که نماز مستحب می‌خوانید موقع روزه واجب گرفتن خوشحالتر باشید از اینکه روزه مستحب می گیرید و روزه مستحب و نماز مستحب رو هم به این دلیل برید سراغش لذت ببرید ازش که توش امر هست که توش که اذن هست یه دفعه بینید جوون شادابی که دوست داره دل بخواهی عمل کنه این یه پیل مرد داره در به در دنبال دنبالی میگرده آقا این مستحبه؟ این عمل وارد شده؟ اگه وارد شده انجام بدم اگه وارد نشده میخوام چیکار انجام بدم؟ من امر میخوام من امر میخوام فرهنگ امر و نه یعنی معنا کردن حقیقت بندگی این کمال بشر است نه خوب باشد به میل خودش حرفایی که یک کمی آدم بیرون از این محیط بخواد بزنه یک کمی باید با احتیاط بزنه ممکنه اشتباه برداشت بکنن آدم ها البته شما هم که نماز واجب یومیه میخونید امر خدا را اجرا میکنید و به این اعتکاف سه روزه دو اون روز سومش هستید که واجب بشه میتونستید نخونید هنوز من وجود داره نماز واجبو خوندی میتونست نخونی واجب این واجب که از اون واجبهای اجباری تکوینی نیست بازم برای کلا که اومدی نماز واجب خوندی یه عمر باید بدویی در خونه خدا زجر بکشی تهذیب نفس بکنی که اون یه ذره منم باقی مونده پشت نماز واجب که میتونستم نخونم رو از بین ببریم تهذیب نفس یعنی چی؟ آقا ما که داریم نماز واجب اون رو میخونیم میتونستی نخونی دیگه مخصوصا مخصوصا آدم حلاک میشه آدم نماز خون وقتی به بینمازا نگاه میکنه ممکنه حلاک بشه ممکنه چی بگه؟ بگه خب منم میتونستم نخونم مثل ایناها ولی من خوندم نماز امر واجب خدا رو این, این من این که کنارش گفتی چیکار کرد؟ من خوندم؟ من؟ هنوز نمردی که؟ خواهش میکنم تمنا میکنم عشق رو معنا بکنیم بابا والا به خدا به پیر به پیغمبر ما با فیلم عشقی ساختن با فیلم های زن و مردی ساختن مخالف نیستیم ولی فیلم عشقی زن و مردی ساختن با همین ازدواج همین سریالایی که چه ازدواج خمیرمای داستان ببینید ولی برنامه واقعی کلمه عشق باشه از اون اشق مجازیش استفاده کنید آخه اینا عشق مجازیشون هم مجازی نیست مجازی ببین اینه یعنی فرق است بین هوس و عشق مجازی یه آقایی یه خانمی رو دوست داشت این دوست داشتن میتونه هوس باشه میتونه عشق مجازی باشه عشق مجازی باشه اشکال نداره عشق مجازی هم نیست این دوست داره او رو برای چی برای اینکه از او کام بگیره برای اینکه من دوست دارم او رو بابا ازدواج که مناش من این نیست ازدواج معنیش این استش که من منبت می پذیرم به میل خودم رفتار نکنم. به میل تو رفتار کنم. آقا عی들이 ازدواج رو معرفی کنیم؟ کسی سراغ ازدواج نمیره خب نره، اینه، ازدواج اینه. یعنی من بعد به میل خود رفتار نمی کنم. به میل تو رفتار میکنم. من بعد به میل خودم به تو خدمت نمی کنم. به امر خدا به تو خدمت میکنم. مجبورم که به تو خدمت کنم مجبورم به تو نفقه بدم مجبورم از تو اطاعت بکنم من اگر ازدواج کردم کلی جبر پذیرفتم این اشتر اینو نشون بده یه نمایی باشه از اون حقیقت آینه ای باشه که اون انعکاس درش پیدا بکنه ازدواج یعنی پذیرفتن یک جبر چرا این رو پنهان میکنید این رو اعلام بکنید ببیند غربیا دیگه ازدواج نمیکنم. چون در هوسرانی به اوج رسیدم. میگه چرا من کام میجویم و عبور میکنم و میروم چرا مسئولیت بپذیرم تو زندگی عادی هم میشه اینو جاری کرد اصلا ازدواج این نبود که تو کام بگیری ازدواج معناش این است که دیگری از تو ببرد و این وقت در هر ازدواجی یقینا پیش خواهد چرا دروغ میگیم ما به هم دیگه راستش بگیم مثل آدم زندگی کنیم خدا هر چیزی در این دنیا قرار داده از آینه ای برای انعکاس او و با او امر رو دنبالش باشیم تعبد رو دنبالش باشیم این خیلی شیرینه خداوند متعال امر کرده است آنجایی که امر کرده است برای اینکه تو را به کمال برساند برای اینکه تو نباشی تمرینی بکنی بر نبودن خودت آنجایی که امر نکرده است فرصت داده است تو جستجو بکنی امر پیدا کنی همین رابطه با خدا معنای جز این ندارد تو جستجو کنی امر پیدا کنی وظیفه پیدا کنی وقت رابطه عاشقانه عبد نسبت به مولا تجلی ندارد جز در ظرف وظیفه خدا کند که وظیفه باشد روزی برای خدا بمیریم او همینجوری بمیرید همینجوری دوزار ارزش نداره من منم داره من زدم من خواستم بمیرم اون مرگم ارزش نداره من دوست داشتم بمیرم من دوست دارم بمیرم خدا برات من دوست دارم تو امر کنی من مجبور باشم برات بمیرم کلمه مجبور بودن رو به معنای مأمور بودن شما بگیرید لسان من خیلی الکنه و خیلی زبانم نارساست برای بیان یه حقیقتی امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بسی میفرماید برو حقیقت عبودیت رو پیدا کن گوه اقا حقیقت عبودیت چیه فرمود و جمع دومین دو دو انصر حقیقت سه بومین حقیقت عبودیت اینه و جمعه اشتغالهی فیما امره الله تعالا و نها ها ان و همه اشتغال او زمه مشقله او در امر و نحی الهی تو چه به من امر بکنیم به رساله عملیه میشه دین تو اونایی که مسخره میکنن رساله رو رساله میشه چی؟ میشه مسیر سیر و سلوک تو ابزار عشقبازی تو چون تو این رساله مجموعه از عوامر و من... مناهی... منیات الهی آورده شده ازنها مستحبات سراغ امر و نهی بریم پس زندگی دو بخش پیدا کرد بندگی و سیر و سلوک دو بخش پیدا کرد اون دو بخش رو نام ببرید یک قرار گرفتن در فضای امر و نهی الهی و صعود کردن چون در امر و نهی من کمتر وجود دارد و اگر در فضایی بودی که امر و نهی الهی نبود جستجو کردن و تمنا کردن امر الهی و خدمت شما عرض بکنم در فضای دوم خدا خیلی ناز میکنه پدر آدم در میاد تا آدم یه امر از خدا بگیره گاهی تو ابهام آدمو بیچاره میکنه گاهی خیلی بازی سر آدم در میاره اینقدر می پیچونه اینقدر ناز میکنن می شما دو روز اینجا تمنا میکنین تا یه روز بتونه عم بشه جریان اعتکاف داستان زندگی ماست اجازه میدید از این بحث من به مناسبت هم بپردازم که اصلی ترین موضوع است که باید در مورد اون این لحظات خودمون رو به ذکرش باشیم و متوجهش باشیم و خداوند متعال در چنین فضایی به نمایندگی خود خلیفه ای روی زمین مقرر فرمودهاند انبیا و اولیا الهی به جانشینی خدا این ولایت را بناس به عهده بگیرن ولایت تشریعی را و عهدهدار عمر و نهی خدا بشن حالا ببین چه مشکلاتی ولی الله العظم پیدا می کنند. علیه ابن عبی طالب که مأمور ابلاغ این امر است معمور اجرای اجتماعی این ابلاغ است ببینید چه مشکلاتی پیدا میکنه هر موقع علیه ابن عبی طالب امر میکنه یعنی ما میخواد ما در دالان این امر رشد بکنیم هر موقع امر نمیکنه منتظر شما برید تمنا بکنید از حضرت امر بگیرید امیرالمؤمنین می‌دونید چه اتفاقی تو زندگیش افتاد؟ علی بن ابی علی علیه السلام هر موقع امر می‌کرد متهم می‌شد که قدرت طلب است. خیلی ساده، مگه نریدی گفت خدا مگه به نماز ما احتیاج داره؟ داره متهم میکنه خدا رو دیگه. چون خدا امر کرده، فکر می‌کنه خدا گیر کرده که امر کرده، نمی‌دونه به خاطر ما داره امر می‌کنه. من اگه بودم میگفتم خدای بابا امر نکن خودتو سوءک میکنی. این گوش نمیدن. فکر کن تو محتاجی بلشون کن بذار هرکی خواست اومد کرد. خدا میفرماد دلت میاد بذا من امرمو بکنم بذار این خودشون مجبور ببینن وقتی خودشون مجبور به اجرای امر دیدن حضور انانیتشون کمتر نورانیتر میشن من چون دوستشون دارم بهشون امر میکنم. حالا همین طرحو امیرالمومنینم هم میخواد در بعد اجتماعیش اجرا کنه امیرالمؤمنین راحت متهم میشه دو تا اتهام داشت امیرالمؤمنین وقتی امر میکرد متهم میشد به قدرت طلبی وقتی امر نمیکرد منتظر میماند که تو بری از او امر بگیری معتکف بشی به خانه ولایت دو روز تا روز سوم را به تو امر بکند متهم میشد به ضعف. هر دو اتهام رو زمان خود امیر المومنین سریحا به خود علی ابن عوی طالب می گفته. ولی خدا هم رابطه ای که ما با داریم همین جوریه یبنل آقا دوست دارم فدات بشم دورت بگرم سب کن سب کن صبر کن. کن ببینم این دوست داشتن رو ترجمه کن ببینم کار داریم حالا اولا دوستش داری که هنر نکردی تو از جنس علی ابن عبی طالب خلق شده ای و نفخت و من روحی ای خدا از روح خودش در تو دمیده همون خدایی که از نور خود علی را خلق کرد و آفرید تو اصلا نمیتوانی علی را دوست داشته باشی این که میگید من دوستش دارم علی ابن عبی طالب رو نمیخوام جسارت بکنم، نمیخوام اهانت بکنم به محبت شما به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. جلسه خصوصی دارم عرض میکنم وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، معاویه اشک ریخت. بالاخره امیرالمؤمنین یه آثاری در انسان خواهد گذاشت. شما که خیلی ناز و خوبم هستی، ولی صبر کن بشم. چه حرکت نمادینی کرد پیامبر اکرم وقتی فتح مکه صورت گرفت خانه کعبه که محل تواف است اومد ها رو در این خانه کعبه شکست تو علی را دوست داری در این کعبه محبت علی ابن ابی هم داری یا نداری اصل این کعبه قبلگاه است و باید بماند و بیت عتیق است برش تردیدی نیست فطرت تو مفتور به فطرت نمی نمیتوانی دوست نداشته باشی هنر نکردی علی ابن نبی طالب را دوست داری آیا دوستی تو رسیده است دانجایی که بمیری برای دریافت امری از مولای خودت یا نه آیا دوستی تو رسیده است با آنجایی که اگر مولایت به تو امر کرد او را جاه طلب و قدرت طلب تظور نکنیم؟ خود خواهیت مقابل امر مولا تحریک نشود؟ آیا دوستی تو به آنجا رسیده است که از مولا امر طلب بکنی و تق... تقاضا بکنی؟ همونجور که محرم میشی رفی کلی امر رو به, خودش... به خودت میبارانی، مقرب بشی به مولا تا کلی امر بر تو جاری بشود به خود نباشی یابن حسن من تو را دوست دارم این منو چجوری بتونیم از بین ببریم به معنای فلسفی کلمه دقیق دقت کنید نمیشه از بین برد ولی روز به روز چجوری باید تضعیف کرد شما در هر محبتی که به حضرت دارید سوء ظن به خود داشته باشید هی نداره ضرر نمیکنی این منی که میگوید من دوست دارم را، مولا آقا این من چقدر زنده است چقدر هست چقدر نیست این تفهس میخواد من، این تهذیب نفس میخواد همینه که یه کلمه گفتی من آقا رو دوست دارم که کفایت نمیکنه این من چقدر هست علی ابن میدونید طالب می میکرد که مردم دوستش نداشتن؟ شما داستانهای امیرالمومنین المومن رو شنیدید دوستش دارید و بالا با به خدا قسم مردم زمانه امیرالمومنین مردمانی نبودند که تفاوت چندانی با ما داشته باشند. عقلشان پار سنگ بردارد قلبشان پار سنگ بردارد قلب سنگ بردارد مردمان عجیب قریبی نبودن علی کفران ها را در می آورد مولاست معشوقی که ذلیل تو باشد تسخیر تو بشود مولای معشوق است و تو عبد عاشقی نه گردن کلفت عاشق که لطف کردی از بین همه بوتان عالم علی را انتخاب کردی که اصلا لطف نیست ببینید دقا بذارید خودمونی صحبت کنیم عاشقی نسبت به م... امامان با گردن کلوفتی نمیسازه. با منم نمی سازه علی علیه السلام چرا در بین مردم خود قریب بود؟ چرا یه دفعه یه دفعه یه دفعه ته دل بعضیا میزد علی دلشو زد وای خدای من علی دلشو زد علی دلش زد نکنه ما نزدیک امام زمان علیه السلام بشیم یه دفعه آقا دلمونو بزنه کی میشه آقا امام زمان دل کسی رو بزنه وقتی که کسی در نفس خودش انانیت حفظ کرده باشه این آدم نزدیک آقا بشه آقا دلشو میزنه دور باشه بله دوری و دوستی دوری و دوستی اینجا درسته اگه از حضرت دور باشی از حضرت دلتو نمیزنه ولی به حضرت نزدیک بشی می به میزان خودخواهی که برای خود نگه داشته ای حضرت دلتو میزنه مرگ بر من اگر که وقتی نزدیک علی شدم علی دلمو بزنه نمیدونم من مثل که امروز بناس نقش شم رو تو این تحضیه بازی کنم یک کمی میخوام آزاردهنده صحبت کنم بعد انشاءالله خود امیر شما رو نوازش میکنه جبران میکنه آقا اولین ملاقات ما با امیر هنگام لحظات سخت جان دادن است آدم لحظه های سخت جان دادن به زمین زمان بد و میگه یه آقا میاد مقابل تو تو به مقداری که جون عزیز باشی یه وقت نکنه آقا تو بزنه آماده باش برای لحظه مردن لحظه ملاقات علی ابن ابی طالب و من یه متیرنی جونتو دوست داشته باشی به علی نگاه کنی نکنه یه وقت با قیز به علی نگاه کنی حضرت امام این داستان رو در های اخلاقش می‌فرمود که به طرف گفتن بگو لا اله الا الله گفت الان بگم یه عمر گفتم اشتباه کردم این چیه داره جون منو می‌گیره خداست الان وقت مردن منه به هیچ وجه نمیگم شیطان میگن تمام زورش رو لحظه جون دادن می‌ذاره ایمان آدمو بگیره میگه بگی ببین خدا داره جونت میگیره در روایت داره هر لحظه جان دادن سخت‌تر از هفتاد ضربه شمشیر آبدار است که به انسان بخورد درد بکشد نمیرد تو چنین دردی تو لحظه یه دفعی مواجه میشی نشستی کنار گود میگی لنگش کن مردم کوفه خاک بر سرتون چرا علی رو دوست داشتید خب مردم کوفه هم خاک بر خب خودخواهی داشتن دنزه خودخواهی هر هرکی نزدیک علی بشه دفعی دلش میزنه دلش میزنه آقا الان نماز دل بعضی رو میزنه یا نه از آن میگن تای دلت ایدفی بی تموم شد اگه اینو یه بار به علی بگی چی میشه اون وقت این دل و تو در محضر علی باشی و پای رکاب علی خدا چه نفرتی از تو پیدا خواهد کرد و علی تای دلت بگی نوچ یه بحث فانتزی نبود اون بحث اولی که کردین آقا دنبال درک, درک کنیم قیمت امر خدا را امر امر اونجا من حضور ندارد میل وجود ندارد اگر این من و میل را نگه داشتی این یه روزی کنتاک میکنه خصوصا اگه با مولا نزدیک بشی من حق به مردم کوفه میدم علی دلشون رو زد این معقوله آقا این سیاق این ای که بنده برای موعظه و نصیحت اتخاذ کردم البته بنده خیلی کمتر از شما انشالله با دعای شما منم آدم بشم این شیوه درسته یا نه یه چند لحظه سخنلانی رو بکنید این شیوه درسته یا نه میخوام بگم درسته آقا ما منتظر آقای ما زمان هستیم آقایان قدر دوست داریم تو اینجوری خوبه ما را اینجوری دل میترسونی یه جورایی یه جورایی داری انگار انظار میدی میترسونی عشق است آقا از عشق سخن بگو بنده روایت برای شما بخونم در روایت میفرماید قبل از ظهور خود را آماده کنید تحضیب نفس کنید به قدر کافی خود را مهیا بفرمایید چی عیان ما چرا که امر ظهور وقتی رخ داد امتحانهای هولناکی در جا پدید خواهد آمد که آن موقع دیگر فرصت خودسازی ندارید باید قبل از آن خود را ساخته باشید اهل بید ما را ترساندن از اینکه به محضر امام زمان برسیم دفعی امام زمان دلمونو بزنه این کار بنده نیست دانگی سریقش بود ما رو به ترسونه ما امر اجرا میکنیم تا آدم بشیم. امر اجرا میکنیم تا آدم بشیم. فداتون بشم الهی. سعی کنید آداب نماز واجبتون رو در حد اعلا اجرا کنید. تا آن منی که همیشه با میلش شما را به زمین می زند بمیرد. قلط کرده است. میگه من چیکار کنم نماز با عشق بخوانم عزیز من نماز با ادب بخوان تا دل داشته باشی که دل بتواند عاشق بشود همین اول نرسیده میخواد به سرخاله بشه چون, خ... چون میدونه چرا چون عبد میل دیگه میگه من چیکار کنم با اجازه این بوت خودم میل خودم بتونم نماز بخونم این بط من نمیگذاره میخوام این بوت, بوت راضی کنم او بوتو بشکن خلاف میلت معدبان نماز بخون همه خواه حال پیدا کرد مخواه نماز بخونی. مرتب امر مولا امیرالمؤمنین، جایی که امر کرد دلتو نزنه و جایی که امر نکرد آسودگی احساس نکنی آخش دیگه هیچ کاری با من نداره یه بار تو دلت بگی آخش کاری مولا با من نداره به تمنای امر او نروی خدا داره نگاه میکنه خدا علی رو خیلی دوست داره نگاه یه از چشم خدا میفتی بطه نفس رو تو بغلت گذاشتی، میخوای بری به آقا هم عشق ببرزی بودن کسانی که میگفتند یا علی تو را دوست داریم و فکر میکردن که راست میگویند و علی یه نبی طالبانان را نگاه کرده است و فرموده است که نه شما مرا دوست ندارید شما دروغ میگی و اون فرد برمیگرده اعتراض میکنه یا علی من دارم از روحم به تو خبر میدم چجوری من داری متهم میکنم من واقعا تو را دوست دارم آقا فرموده است من همه دوستان خود را به اسم و تمام مشخصات می شناسم تو جز به آنها نیست و این انسان بعدها آدم خرابی شده گوشتو تو بیاریسی در گوشت بگم اون زمانایی که احساس میکرده علی رو دوست داره میلش و خودخواهیش بوت نفسش بهش اجازه داده بوده علی را دوست بدارد وقتی اون بوت نفس یک لحظه بهش برخورد دیگه این محبت رو قطع کرد اومد تو سفه قاتلین نبا عبدالله حسین این فرد تو کربلا ایستاد حسین رو بکشی با نفس سراغ علی نریم بی نفس سراغ علی بریم اگر با نفس سراغ علی برویم علی باز هم ما رو نوازش خواهد کرد علی آغاز. آقاییش حلاکمون نکنه آقایی علی خیلی را حلاک کرد چون کسی با نفس سراغ علی بره علی او رو ترد نمیکنه باز هم او را نوازش خواهد کرد باید انقدر در خانهٔ علی بنشینی اصرار کنی تا علی یک محبت خالص به تو بدهد و اون محبت خالص محبت بسیار فراوانی خواهد شد. یک کمی ترسیم کنم این محبت خالص رو ارزم تمام مرغ خیال کس را کس و پر نبندد هر جا بر او کس راه گذر نبندد دائق فیض حضورت می همم هم ما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم محبت خالص محبت بیدلیل است. میگی من دلم برای علی تنگ شد آقا چرا؟ نمیدونم درم بیچاره میشم آقا میخوام من علی رو میخوام بابا عزیز من خب حالا خب تو آقا رو دوست داری بشین سریجا میگه نه بیقرار هست بابا عزیز من دیگرهای من چیکار کنم؟ تو علی رو دوست داری؟ یه کسی اسمش رو ببره ذکرش رو بگه من یک آروم بشم من آقا رو دوست دارم میخوامش آقا برای چی میخواش؟ آجا گریه میکنی حالا برای آقا؟ میگه هیچی نه برای مظلومیتش گریه میگمی؟ این نه در خودش گریه میکنم آجا گریه میکنی دوستش داری دیگه؟ محبت خالص بی هوای نفس همینجوری همینجوری همین جوری برای علی می میری همین جوری, همین جوری. چه محبت نابیه چه چشمی زلالیه فقط زندگی تو اون لحظات درک میشه آی که برای امام حسین خود رو میکشید انقدر بکشید تا شما رو به محبت زلال علی برساند حسین. من علیرضا دوست دارم همینجوری دیشب یه گدای منو آتیش زد سر چهارراه داشتم می‌رفتم گدایی کار بدیه دیگه دیدم از این ابزار موسیقی دستش گرفته داره میزنه میکرد یه جوری بزنه با اینکه میدونه همه میدونن گدایی تکات دیگری کار بدیه یه جوری بزنه که کسی از این موسیقی خوشش بیاد بگه بیا،, بیا خیلی خوشم اومد. از این نوای که زدی خوشم اومد. کارت کار بدی ولی بیا این پولو بگیر به دل ما صفا دادی یه زمانی گداها میدونستن گداها، گدای کار بدی، میخواستن دل ببرن میدونیش کار میکردن. تو کوچو بازار راه می‌افتند می‌گفتن علیای یه رحمت آقای درف آدم ما خود بی خود می‌شونه گفتن نامرد اسم معشوق من آورده بیا اینجا ببینم ببین تو بی بیا این کار خوب نیست ولی تو من چیکار کنم من هر کار یه یادته اسم معشوق منو بریم مدرسه میرم چون می علی چیز دیگه بگو این جدای بلده رنده بگیر من میدونم نا همهشون با پول دادن به گدا مخالفن الان من یه کار میکنم همه هم دست میرن میاد از جلو میشه علی جانم علی جانم کی بود کیو گفت که کی از مشوق من عرصم شادیش میشه علی شیرینیش میشه علی عروسی میگیره مده علی میخونه روز میلاد علی ابن طالب به بچه ها تصمیم بگیرید عروسیتون مده علی بگی کیف کنید لذت ببرید هیچ چیزی در این عالم به اندازه مهر علی انسان را آتش نمیزند، مهر خالص علی ابن عبی طالب از خودش بخواید به خدا علی مهربان دنیا ازش بهت میده خودش رو بخواید یه کمی ناز میکنه از ولی نازش خریدن داره ازش بخواید مستقیم بگید آقا ما مبارزه کردن با خود برامون خیلی دشواره مگر اینکه از راه محبت تو وارد بشین اگر محبت آقا شعله کشید بعد ببین پیامبر چی میفرماید ای خدا ای خدا ای خدا میفرماید علی جانم مؤمن مؤمن اگر با ضربت شمشیر به بینیش بکوبی که با تو دشمن بشود با تو دشمن نمیشود یعنی چی یعنی چون خود خواهی نداره مقابل تو تو بیچارش کردی بزنیش اصلا نمیفهمه تو زدیش اون وقت تو امر کنی دلشو بزنه؟ داغونش کنی این مقابل تو قشنگ نیسته بعد میفرماید علیجانم دنیا رو اصل کنی در کام منافق قرار بدی که به تو علاقه پیدا کنه به تو علاقه پیدا نمیکنه. او خود خواهه او آخرش تو رو نمی خواهد. ما نه اما بپذیرید. من اجازه بدید بگم نه مؤمن از نفاق به سو از سیاهی به سوی نور داریم حرکت میکنیم دستمون رو مقابل علی ابن عبی طالب امروز روز میلاد علی ابن به باز کنیم امروز خدا همه چی به علی داده. او رو در خانه خودش به دنیا آورده. بریم بگیم یا علی که خدا امروز همه چیز به تو داد که به کسی نداد. یک چیزی هم به ما بده. علی اینقدر آدرس ندم به ازونا. آدرس نخواهید سند نخواهید بگذار من میگم بگید چش دیگه علی روش نمیشه کسی رو از در خانه خودش بی جواب رد کنه در همون نگاه میکنه باور نمیکنید بیاین مدینه اون دو نفری که اومدن ایادات خانومش میگه زهرا وقتی راه نداد گفتن میدونیم چیکار بکنیم اون سراغ علی رو گرفتن او کمال پر روی کجا تو کجا تو تازه از ایام فاطمیه بیرون اومدی فاطمه صدا زد یا علی نمیخوام این تو خانه تو ببینم امیرالمومنین فرمود فاطمه من من دوست ندارم کسی از من چیزی بخواد بگم نه این علیه ازش بگیری یا فداتون بشم با مهر علی آمده اید هرچقدره هست نوش جانتون کرور کرور افزایشش بدید و برگردید خواهش میکنم تمنا میکنم ازتون به خدا اگر لذت برتر رو از این محبت والا بردی دیگه معصیت نیاز نداری حالت بهم میخوره از معصیت تفریل میکنیم با معصیت اسان یه چیز دیگه میشه فداتون بشم بیت قبول بکنیم ما محبت هامون در آغازه برای علی ابن عبی طالب میتونه خیلی زیادتر باشه بقیهش رو تو باید بری تمنا بکنیم اون محبتی که دیگه کنارش انانیت باقی نگذاره که یه وقت علی دلمونو بزنه علی باز خواهد گشت رجعت خواهد فرمود برای امتحان قلوب مؤمنین رجعت خواهد فرمود بین ما دوباره زندگی خواهد کرد و ما اون روز رو انشاءالله ببینیم بریم نزدیک علی بشین ببینیم نوزو الله زبانم لال. یا نکنه علی دل ما رو بزنه یه پدری اومد پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت آقا من تو رو دوست دارم خیلی دوست دارم. خیلی اصلا بین امامان ما عشق به امام یعنی عشق به امیرالمؤمنین عشق به ابا عبداللهم حسین به این دلیل است که حسین پسر علیه اشق عشق به فاطمه زهرا فدایی علیه آقا محبت علی امر ممتاز است عزیز من فدات بشم اصرار نکنم بهش توجه ویجه توجه ویجه بهش بکنیم این محبت رو اجازه بدیم میدان بدیم اشت بکنی. روشت بکنیم رشد با تحضیب نفس خیلی کمک میشه ولی با تمنا و توسل هم میتونید گاهیش راهی ساله رو یک شبه برید اومد گفت یا علی من تو رو خیلی دوست دارم اما این بچه من یه پسر بچه دارم اونقدر برای تو نمیمیده من نمیخوام عزیزون علین ابکی که بیاخذلک انورا امینه من نمیتونم من میخوام بر تو بمیره آقا فرمود خب پسر تو بیار پسرش رو آورد پیش امیرالمومنین آقا سر پسر رو بالا کرد یه نگاه تو چشمای پسر کرد دل پسر رو تصرف کرد فرمود ببر پسرتو برگشتن اومدن تو خونه نشستن سفره آماده بود غذا بخورن این پسرش یه گوشو نشسته زنوی قم بغل کرده داره گریه میکنه. بیا پسرم غذا بخوریم. چی شده ناراحت نگو ناراحت نیستم. چیه بیا غذا بخور. دلم برای آقا تنگ شده. <تصفيق> میشه برام ببینم آقا رو. محبت خالص میشه محبت بیدلیل. آشق شبه نه روزی کار جهان سرایت. میشه. محبت خودتون رو به آقا امیر بالا ببرید میشه ازتون یه خواهش کنم این سه روزه رو نیت کنید مسجد کوفه نشستید معتکف شدید به این نیت که مسجد کوفه در خانه علی بن ابی طالبه و بگید یا علی کسی سه روز در خانه تو بشینه در رو به روش آخر باز نمی سه روز در خانه تو نشستم قرآن می خونم سبابش حدیه به شما هرچه کاری عبادی انجام نماز بخونید سبابش رو حدیه کنید به امیر هدیه حدیه کنید به عزرت میرسه ذکر علی داشته باشید بگید سه روز من در خانت می این سه روز نمی خواهید تو آخر سه در رو به رو من باز کنی. حضرت بیان چی میخوای از حضرت یا علی ابن طالب محبت در دل من بالا ببر خیلی بالا خیلی بالا انشالله هممون باشیم روزی رو ببینیم که ببینیم مهدی فاطمه علیه السلام میآیند در حالی که به فرمودی امام صادق علیه السلام لباس رزم علیه ابن طالب را به تن کرده هم. و سیره علی ابن ابی طالب علی علیه السلام را میخواهند عمل بکنند جانشین امیر المؤمنین را زیارت بکنیم به یاد امیر المؤمنین به او عشق ببرزیم و آنقدر بی خود که حضرت ما را از مبالیان خاص درگاه خودشون قرار بدهند خدایا محبت ما به امیر المؤمنین آن به آن افزایش انایت بفرما خدایا با اجرای عوامر و نواهی خودت با رعایت عوامر و نواهی خودت هر لحظه انانیت در ما از بین ببر خدایا فرهنگ امر پذیری و عشق ورزیدن به امر الهی در جامعه ما در جانهای جوانان ما روزافزون زفزون و پرونه قرار بده خدایا ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده قمهای دل رهبر عزیز انقلابمون برطرف طرف بگردان ما رو به عشق علی شادمان بگردان ما رو به عشق علی گریان بفرما قم و شادی ما حول مهر علی ابن طالب قرار بده قم و شادی های و ناشی از خودخواهی های ما در ما از بین ببر خدا یا این سه روز از ما به کرمت قبول بفرما. سلوات خدسد. مؤسسه اطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران میدان انقلاب زل شمال شرقی پاساج نبوبر دفتر پیشگامان تلفن تماس 6649 شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات سه نو سال سی و پنج هشت سال پنج و شش پنج و پنج دو سه